شاهد ازمان شاهد ازمان قران دان بی نصیب ازمان شاهد ازمان شاهد ازمان از از از قران بی نصیب ازمان شیرین جان دان عزیز من. خدا خدایاریس آن جانم شیرین جان دان عزیز ازمان خدا یاری اون جانه اون جانیه او غلمن هر دم جان کل منگز هیچ غم اون جانیه غلمن هر دم جان کل منگز هیچ غم اینو غم, غم بولنگز محکم Singilar IT MENGIZ MATAM singular BULINGIZ IT MENGIZ MATAM SHAHIDIZ MAN SHAHIDIZ MAN KURAR bi NASIBIZ SHIRIN AZIZIZ man. خدا یاریم آنها شیرین جان دان عزیز من خدا یاریم آنها شهید من فی سبیل الله صفاتیم برد جند الله شهید من فی سبیل الله صفات بولد جند الله همه مطلوب و مقصود دیسه ummat Rasulullah, hamamat همه مطلوب و مقصودیم دیسه امت رسول الله شهید از من شهید از من کرردان بی نسیب از من قُرار دان بی‌نسب عثمان شیرین جان دان عزیز از من خدایاریز آن جانم شیرین جان دان عزیز از من خدایاریز آن جانم qurban qail de mshrin jaan de buya deem qan ga maidan de qurban qail de mshrin jaan de buya deem qan ga maidan de ya santur dum qalam berlan amal e toob shukr aan de ya santur dum مال تو ب شوق آن زمان شهیدی زمان کور آردان بی نسبی زمان زمان زمان زمان شیرین جان دان زمان شیرین جان دن عزیزیز من خدا یاریز آن جانم Ota onam takliptak tis, bola lek tan khatat tis. Ota onam takliptak tis, bola lek tan khatat tis. Baris bolsam kuyubyan eb, doktorlariga مرز بول سام کو بیانے ڈاکٹر لار گیا اولب چاپتے شاہد ازمان شاہد ازمان قران دان بھی نصیب ازمان شاہد ازمان شاہد ازمان قران شیرین جامدان، عزیز من، خدا یاریس، آنا جانم که چالارمان یغلب دورسم، آنا جانسیز نه ای قاتسم که چالارمان یغلب دورسم، آنا جانسیز نه ای قاتسم. maning oleb allah aitiz to inke maan auram bun sam maning oleb allah aitiz to inke maan auram bun sam shahid isman shahid کوردار دان بی نسی بیزمان شهیدیزمان شهیدیزمان کوردار شهیدیز دان بی نسی بیزمان شیرین جان دان ازیزیزمان خدا یاریس آن جانم شیرین جان دان ازیزیزمان خدا ياريس انا جانم صحابا يولن توتم الام اوقوب عمل اتم صحابا يولن توتم الام اوقوب عمل اتم tum kafir lar be lan urushob shahadat char batin is tum kafir lar be lan urushob shahadat char batin is tum shahid isman shahid isman کوردار بی نسبی زمان شاهیدی زمان شاهیدی زمان کوردار بی نسبی زمان شیرین جان دان عزیزی زمان خدا یاریس آنا جانم شیرین جان دان عزیزی زمان خدا یاریز آن جانم بوتن کفار ہم جنگ در بودنیا چالو نیرنگ در بوتن کفار ہم جنگ در بودنیا چالو نیرنگ در مسلمان لار مزروم بولگن غافل تر ما خب مسلمان لار مظلوم بولن غافل تر ما خب کنندور شهید زمان شهید زمان کردار دان بی نصبی شیرین جان دان عزیز زمان خدا یاریس آنا جانم شیرین جان دان عزیز من خدا یاریس آنا جانم غافل بولم مسلمانlar توکتی بس بو قزل قانlar غافل بولم مسلمانlar توکتی بس بو قزل قان لار کل انگیز لار سنگر لار گا شیر جوان ای پهلوان لار شیر جوان ای پهلوان لار شهید از من شهید از بی نسیب از شاهد ای زمان شاهد ای زمان کورardan bin naseb e zaman Shirin jandan aziz e أقرد من قز القان دي تسلم إتم شيري جان دي أقرد من قز القان دي تسلم إتم شيري جان دي أورال من كفنم گم تطم رزا يرحمان دي أورال من كفنم گم طابت مزازه رحمان دن شهید زمان شهید زمان کوردن به نسی بزمان شیرین جان دان عزیز زمان خدا یارس آنا جانم شیرین جان دان عزیز زمان خدا یارس آنا جانم آنم سزن کرالمی من بودنیا گا ترال می من آنم سزن کرالمی من بودنیا گا ترال می, می, می من شهید بودم خدا یولگ سز نے بہن لانی اورال مہمان شاہد بول دوم خدایو لگا سز نے بہن لانی اورال مہمان چاہیے دزمان چاہیے دزمان کو ردان زمان شاهید زمان، شاهید زمان، کوردن به نسی بزمان، شیرین جان دان، عزیز زیز من، خدا یاری، آن جانم، شیرین جان دان، عزیز زیز من، خدا یاری، آتا جانم. بوترانه اسلام امت نه پاک شهیدلر نه آنه آتسیگ قلگن نیداسه اوچون. فرمایش بیرگوچه سیید زبیح الله خان اوقو گوچه و توزه گوچه. اینا غلر جانه.